منم که دیده به دیدار دوست کردم باز چه شکت گویمتی کار ساز بنده نواز نیازمند بلا گور رخ از غبار مشوی که کیمیای مراد است خاک کوی نیاز ز مشکلات طریقت انان متابه دل که مرد راه نیندی شد از نشیب و فرا تهارتر نبخونه جگر کند عاشق به قول مفتی عشقش درست نیست نماز در این مقام مجازی به جز پیاله مگیر در این سرابچه بازی چه غیر عشق مباز در این مقام مجازی به جز پیاله مگیر در این سرابچه بازی چه غیر عشق مباز به نیم بوس دعایی به خرز اهل دلی که کید دشمنت از جان و جسم دارد با فکن زمزمه اش در حجاز و اراد نوای بانگ غزلهای حافظ از شیران